سنگ صبور این داستان را خانوم زینب سهولی از بوشهر بندر دیر نقل کردند روزی روزگاری پادشاهی پسری داشت روزی پسر پادشاه تو باغش قدم میزد که هوس کرد پرتقالی را از درخت بچینه پرتقال رو کچید خواست اون با چاقو پوست بکنه که ناگهان صدایی از داخل پرتقال گفت نه دستمه پسر با تعجب اطرافش رو نگاه کرد اما کسی رو ندید دوباره خواست پرتقال رو پوست بکنه که صدا گفت نه پامه ناگهان دختری به زیبایی ماه از داخل پرتقال بیرون اومد دختر که بی لباس بود از خجالت رفت بالای درخت پسر گفت بیا پایین من با ازدواج ازدواج میکنم دختر گفت نمی بینی لباس ندارم پسر گفت همونجا بشین تا برم برات لباس بیارم پسر که رفت کنیز سیاهی اومد لب چشمه تا آب ببره که دید عکس زیبایی توی آب افتاده. فکر کرد عکس خودشه. با خودش گفت من به این زیبایی حیف نیست کنیز باشم. دختر زیبا که از بالا حرفای کنیز رو میشنید خندش گرفت. با خنده دختر کنیز متوجه اشتباهش شد. کنیز پرسید چرا اون بالا نشستید؟ دختر ماجرا رو تعریف کرد. کنیز گفت بیا لباس های من بپوش. بعد سطل رو پر از آب کرد و داد دست دختر رو اون روانه قصر کرد. پسر پادشاه که اومد دید یه زن سیاه بالای درخت نشسته. گفت چرا سیاه شدی؟ کنیز گفت تو آب چشم شنا کردم سیاه شدم. پسر بی خبر از همه جا لباسا را داد به کنیز و هفت شبان روز عروسی گرفتن. از اون طرف دختر بیچاره شد کنیز و تمام کارا را انجام داد و صداش در نیومد. یه روز پسر پادشاه قصد سفر کرد از تمام اهالی خونه پرسید که چی میخوان و هر کسی چیزی گفت تا نوبت به دختر رسید دختر گفت من فقط سنگ صبور میخوام اگه نیاری دعا میکنم دریا برات پر از موج بشه وقتی پسر قصه برگشت از سفر رو داشت تمام سوقاتیا را آورده بود الا سنگ صبور وقتی سوار کشتی شد دریا طوفانی شد پیرمردی که تو کشتی بود گفت حتما کسی از شما چیزی خواسته و فراموش کردی. پسر یادش اومد برای کنیزش سنگ سبور نخریده. برگشت و سنگ سبور رو خرید. مرد فروشنده گفت اگه این سنگ رو به کسی میدی باید کمین کنی تا حرفاشم بشنوی اگه اون درد دلاش رو به سنگ بگه و تو نتونی این سنگ رو از دستش بگیری اون آدم به جای اون سنگ میترکه. پسر سوقاتی همه رو داد. از جمله سنگ سبور دختر رو داد و خودش گوشهی پنهون شد. دختر رفت گوشهی و به سنگ صبور گفت ای سنگ صبور دختری بودم وسط پرتغال. پسر پادشاه آزادم کرد. کنیزک اومد لباساش رو تنم کرد و خودش شد زن پادشاه و من کنیز شدم. ای سنگ صبور حالا من به ترکم یا تو؟ ناگهان پسر پادشاه پرید و سنگ رو از دست دختر گرفت و کمی دورتر پرتابش کرد. سنگ ترکید و پسر که همه چیز رو فهمیده بود با دختر عروسی کرد و دو پای کنیز رو یکی به اسب گرسنه و رو به اسب تشنه بست و راهی بیابونش کرد. وقتی از وسط دو شقه شد اون رو به جای دولنگ در گذاشتن. وقتی در باز میشد، کنیز میگفت جیریک جیریک و دختر می گفت خودت کردی که سزای خیانتکارا همینه